گفتم کهیم دهان و لبت کامران ران کنند گفتا به چشم هرچه توگویی چونان کنند گفتم خراج مصر طلب می کند لبت گفتا در این معامله کم تر زیان کنند گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه گفتین حکایتی است که با نکتدان کنند گفتم سنم پرست مشو با سمد نشین گفتا به کوی عشق همین و همان کنند گفتم هوای میکده غم میبرد زی دل گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند گفتم شراب و خرگ نایین مذهب است گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند گفتم ز لعل لبان پیر را چسود گفت ها به بوسه شکرینش جوان کنند گفتم که خاجه کی به سر عجل می روید گفت زمان که مشتری و مقران کنند گفتم دعای دولت او ورد حافظه است گفتین دعا ملاویه که هفته آسمان کنن